ای که در جستجوی حیات جاودانی بود تو روزگارای قدیم تو قسمت مرکزی سرزمینی بزرگ شهری بود که توی اون شهر یه قصر وجود داشت پادشاهی اونجا زندگی میکرد که یه پسر داشت که فکر میکرد از تموم پسرای دنیا عاقلتر و زرنگتره در واقع پادشاه هرگز برای تربیت پسر باهوش زحمتی نکشیده بود اما تو انتخاب مربیا و معلمای فرزندش از همون زمانی که پسرش خیلی بچه بود خیلی دقت کرده بود وقتی که فرزندش به یه جوون بلند قامت تبدیل شد پدرش اون رو به سفر فرستاد تا ضمن اینکه با مردم دیدار میکنه با شکل زندگی و نوع رفتارهای اونها هم آشنا بشه از زمان بازگشت شاهزاده از اون سفر طولانی به قصر یک سال میگذشت. پدر شاهزاده احساس کرد که وقت اون رسیده تا پسرش راه و رسم اداره امور مملکت رو یاد بگیره. چرا که بالاخره اون یه روزی جانشین پدرش میشد؟ اما شخصیت شاهزاده توی این مدت طولانی که تو سفر بود به کلی تغییر کرده بود و دیگه اون فرد شاد و سرزنده نبود. همیشه غرق در فکر رو، قمگین و ناراحت به نظر می رسید. پادشاه علت این تغییر رفتار رو نمیدونست و این موضوع از صبح تا شب فکر اون رو به خودش مشغول می کرد. پادشاه به این فکر افتاد که شاید پسرش آشق شده باشه. شاهساده هرگز احساسات خودش رو بروز نمی‌داد، به خاطر همین خیلی کم حرف بود. پدرش برای پی بردن به اون چه که تو دل پسرش میگذره تصمیم گرفت که دست کار بشه. یه روز بعد خوردن غذا پادشاه دست پسرش رو گرفت و همراه خودش به یکی از اتاقهای قصر برد. روی دیوار این اتاق، تابلوهایی از چهره دخترای زیبا نصف شده بود. پادشاه رو به پسرش کرد و گفت خب پسرم، تو خیلی غمگین به نظر میرسی بعد اون سفر طولانی که بین مردم بودی و سرت هم شلوغ بود حالا زندگی تو قصر حوصلت رو سر برده و احساس تنهایی میکنی شاید اگر ازدواج بکنی به نفع تو باشه به همین خاطر من تصویر زیباترین دخترای دنیا رو که از نظر طبقه اجتماعی همطراز تو هستن رو جمع کردم تا خودت به دل یکی از اونها رو به عنوان همسر آیندت انتخاب کنی بعد از اینکه تو انتخاب کردی، من بلا فاصله سفیری پیش پدر اون دختر میفرستم و دخترش رو خاصگاری میکنم کنم برای جواب داد افسوس پدر موضوع عشق یا ازدواج نیست که منو ناراحت کرده. بلکه این فکر که همه انسانها حتی پادشاه هم باید یه روزی بمیرن مثل خوره به جونم افتاده و شب و روز ندارم. آرامش من زمانیه که سرزمینی رو پیدا بکنم که اونجا مرگ وجود نداشته باشه و تا زمانی که من اون سرزمین حیات جاودانی رو پیدا نکردم، آروم و قرار نمیگیرم پادشاه بعد از شنیدن حرفای پسرش خیلی مسترف شد چون برخلاف تصورش اوضا وخیمتر از اون بود که فکرش رو می‌کرد. مصایکت با دلیل و منطق پسرش رو از توجه به این موضوعات منحرف کنه. برای همین به پسرش گفت: هاست که در انتظار این بودم که تو برگردی تا اختیارات اداره امور کشور رو به تو واگذار کنم. اما شاهزاده به نصیحت‌های پدرش توجهی نداشت. صبح روز بعد شمشیر به کمر بست و راهی سفر شد. شاهزاده بعد از چند روز به درخت تنومندی که تو هاشیه جاده بود رسید. روی آخرین شاخه این درخت اقابی نشسته بود و با تمام قدرت شاخه های اون رو تکون میداد. این کار اقاب خیلی عجیب به نظر می رسید. در نتیجه شاهزاده ایستاد و با چشمانی شگفت زده به اون نگاه می کرد. اقاب متوجه شد. از روی شاخه پایین اومد و روی زمین نشست. درست همون موقعی که پاهای اقاب با زمین تماس پیدا کرد تبدیل به یه پادشاه شد اون از شاهزاده پرسید چی باعث تعجب تو شده؟ شاهزاده جواب داد من از این کار تو که شاخه ها رو تکون میدادی خیلی تعجب کردم پادشاه اقاب ها جواب داد من محکوم به این کارم تا زمانی که بتونم این درخت را از ریشه در بیارم باید این کار رو انجام بدم. من و سایر هم نوعام از خطر مرگ در امان هستیم اگر که من بتونم این درخت رو از ریشه در بیارم. اما حالا دیگه نزدیک های غروبه و کار کردن برای امروز کافیه. میتونی همراه من بیای و شب رو مهمون من باشی. شاهزاده دعوت و رو با خوشحالی قبول کرد چون خیلی گرسنه و خسته بود. وقتی که به قصرشون رسیدن دختر زیبای پادشاه به گرمی ازشون استقبال کرد بلافاصله دستور داد شام مفصلی آماده کنند. وقتی شاهزاده و پادشاه ها سرگرم غذا خوردن بودند اقاب از شاهزاده دربارهٔ دلیل سفرش که آیا به قصد تفریح بوده یا اینکه نه هدف خاصی از این سفر داشته سوالاتی پرسید شاهزاده هم همهٔ ماجرا رو از سیر تا پیاز برای پادشاه ها توضیح داد و به اون گفت که تا زمانی که سرزمین حیات جاودانی پیدا نکرده باشم به زادگاهم هم بر نمی گردم. گفت برادر عزیزم تو اون چیزی که دنبالش هستی پیدا کردی و من خوشحالم که از این به بعد پیش ما اقامت می یادت هست که بهت گفتم زمانی که اون درخت رو از ریشه در نعی بردم من و هم از مرد در امان نخواهیم بود؟ این کار من حداقل 600 سال طول میکشه. بنابراین تو با دختر من ازدواج کن تا با خوشی و خوبی در کنار هم زندگی کنیم. از اینا گذشته 600 سال عمر کوتاهی نیست. ولی شاهصاده جواب داد پادشاه مهربون پیشنهاد شما خیلی وسوسه انگیزه. اما پایان 600 سال ما دوباره باید تسلیم مرگ بشیم. بنابراین این مدت باز هم راضی کننده نیست. نه من باید به سفر خودم ادامه بدم تا اینکه که سرزمینی رو پیدا کنم که در اونجا مرد وجود نداشته باشه. دختر پادشاه سعی کرد شاه سادر رو متقاید کنه تا از تصمیم خودش منصرف بشه. اما اون با حالتی متاثر سرش رو به علامت مخالفت و این تقاضا تکون داد. زمانی که شاهزاده خانوم به این نتیجه رسید که مهمونش نمیخواد تغییر عقیده بده، از داخل گنجه جعبه بیرون آورد که توی اون جعبه تصویر نقاشی شده ای از خودش بود. اون رو به شاهزاده تحفیل داد و گفت حالا که دوست ندارید پیش ما بمونید این جعبه رو به شما هدیه می کنم تا با دیدن اون به یاد ما بیافتید. اگر که قبل از رسیدن به سرزمین مورد نظرتون احساس خستگی کردید، این جعبه رو باز کنید و به تصویر من نگاه کنید. همون موقع به سرعت باد روی زمین یا توی آسمون حرکت می شاهزاده از اون به خاطر این هدیه تشکر کرد و بعد از اینکه اون رو توی جیبش گذاشت، از پادشاه و دخترش خداحافظی کرد. هیچ هدیه ای توی این دنیا به اندازه اون جعبه ارزشمند نبود. شاهزاده بارها و بارها سپاسگزار این هدیه ارزشمند و مفید شاهزاده خانم شد. یه روز اصر همین اون رو به یه قله مرتفر رسونده بود که اونجا مردی تاس در حال زدن بود و جایی رو قوت میکرد. خاکاش رو توی زنبیل میریخت وقتی زنبیل پر میشد اون مرد خاک زنبیل رو بیرون میریخت و دوباره با زنبیل خالی برمیگشت. و کارش رو از سر گرفت شاهزاده ایستاد و نگاه کرد اون مرد سرش رو بلند کرد و به اون گفت چی بایست تعجب تو شده که اینجوری حیرت زده وایسادی و به من زون زدی شاهزاده هم جواب داد از این کار تعجب میکنم که چرا پشت سر هم این زنبیل رو پر از خاک میکنی و دوباره اون رو خالی میکنی و باز کارت رو از سر میگیری مرد سرتاس جواب داد من محکوم به انجام این کارم. تا زمانی که بتونم این کوه رو هم سطح زمین کنم من و اعضای خونواده از مرد در امانیم. اما حالا دیگه تقریبا هوا تاریک شده و کار کردن برای امروز کافیه. بعد هم برگی رو از شاخه درختی که نزدیکش بود جدا کرد. تو یه چشم به هم زدن ظاهرش تغییر کرد و به یه پادشاه سرتا سبدیل شد. پادشاه گفت حتما خستهای و گرسنه بهتر امشب رو مهمون من باشی تا به خونه برسیم دخترم شام رو آماده میکنه شاهزاده دعوت پادشاه رو قبول کرد و اون دو نفر به سمت به بهراه افتادن وقتی وارد قصد شدن دختر پادشاه که خیلی زیباتر از شاهزاده خانم قبلی بود به اونها خوشامد گفت و بعد هم به طرف تالار اصلی و سر میز شام بهراه افتادن وقتی مشغول خوردن غذا بودن، پادشاه از شاهزاده درباره علت سفرش سوال کرد. شاهزاده هم تو جواب همه ی همون مطالب رو که قبلا توضیح داده بود، برای این پادشاه هم توضیح داد. پادشاه به اون گفت حالا که در جستجوی سرزمینی هستی که اونجا مرد وجود نداشته باشه و حیات جاودانی داشته باشه، باید بگم که تو اون سرزمین رو پیدا کردی؟ یادت هست که گفتم تا مدتی که بتونم کوه رو هم سطح با زمین کنم من خونه از مرد در امانیم این کار 800 سال طول میکشه. همین جا بمون و با دخترم ازدواج کن به نظرم 800 سال یه عمر طولانی مدته شاهزاده جواب داد موافقم اعلی حضرت اما با این حال مایلم که به دنبال سرزمینی باشم که مرد در اونجا وجود نداره به خاطر همینم صبح روز بعد با وجود اینکه که شاهزاده خانم خیلی تلاش کرد تا مانع رفتن اون بشه اما شاهزاده از اونها خداحافظی کرد و زمانی که دختر دیگه نتونست اون رو از رفتن منصرف کنه بهش یه حلقه انگشتری طلا به رسم یاد بود هدیه کرد این حلقه انگشتر خیلی سودمندتر و ارزشمندتر از اون هدیهی بود که داخل جعبه بود چون شاهزاده به کمک این هدیه هر لحظه ای که آرزوی بودن در جایی رو میکرد توی چشم به هم زدن همونجا ظاهر میشد و دیگه نیازی نبود به سرعت باد روی زمین یا توی آسمون حرکت کنه. شاه ساده انگشتری رو توی انگشتش گذاشت و از اونها صمیمانه تشکر کرد و دوباره راه سفرش رو در پیش گرفت. بعد از طی کردن یه مسافت طولانی به یاد انگشتر افتاد. به خاطر اینکه صحت حرفهای شاهزاده خانم خانوم براش عملا ثابت بشه چشماش و بست و یه آرزو کرد. با خودش گفت دلم میخواد خودم رو تو انتهای این دنیا ببینم. و زمانی هم که چشماش رو باز کرد خودش رو توی خیابونی دید که پر از قصرهای مرمرینه. آدمایی که از کنارش عبور می کردن همه شون و قدبلند بلند بودن. لباسهای شاهانهی به تن داشتن. شاهزاده که به بیست زبان مختلف دنیا تسلط داشت از بعضی از اونها اسم شهری رو که اونجا بود سوال کرد. اما هیچ کدوم از اونها جواب رو نمیدونستن. شاهزاده غمگین شد و با خودش گفت چه فایده ای داره که آدم تو شهری زندگی کنه که کسی چیزی نمیدونه و احساس قربت کنه. اما همون لحظه مردی رو دید که لباسها شبیه لباس های شاهزاده است شاهزاده دوان دوان به طرف اون مرد رفت و به زبان خودش ازش پرسید دوست عزیز اینجا کجاست؟ اسمش چیه؟ اون مرد جواب داد اینجا پایتخت سرزمین آبیه. پادشاه فوت کرده و دخترش به جای اون به تاج و تخت رسیده. شاهزاده از این که بالاخره یکی پیدا شده بود که جوابش رو بده خیلی خوشحال شد و از اون خواهش کرد که راه قصد رو بهش نشون بده. هموطن شاهزاده اون رو از چند تا خیابون گذراند و عاقبت به میدون بزرگی رسیدن. گوشه ای از این میدون یه ساختمون باشکوه وجود داشت که روی ستونهایی از سنگ مرمر ساخته شده بود. در انتهای راه پله‌های ورودی قصد، ملکه در حالی که لباس بلند و نقره‌ای رنگ پوشیده بود به شکایت های مردم شهر گوش میداد و منصفانه داوری می کند. وقتی شاهزاده از پله های بالا رفت، ملکه به محض دیدن اون فهمید که نباید یه فرد عادی باشه. به خاطر همین به وزیرش دستور داد که بقیه مردم رو مرخص کنه و به اونها بگه که فردا مراجعه کنند. بعد هم ملکه با اشاره دست به شاهزاده فهموند که همراه اون به قصر بره. خوشبختانه ملکه میتونست به زبان شاهزاده حرف بزنه. و به خاطر همون اونها براحتی میتونستن با همدیگه گفتگو کنند. شاهزاده همه ماجراهای سفر خودش رو برای ملکه شرح میداد. و به اون گفت که در جستجوی پیدا کردن سرزمینیه که حیات در اونجا جاودانی باشه. وقتی همه حرفهاش رو زد سکوت کرد. ملکه با دقت به حرفهاش گوش می‌داد. بعد از تموم شدن حرف‌های شاهزاده ملکه از سر جای خودش بلند شد و اون رو به اتاقی راهنمایی کرد که کفش پوشیده از سوزن‌های بسیار نوکتیز بود. ملکه رو کرد به شاهزاده و گفت این سوزنها رو میبینی؟ تا زمانی که همه این سوزنها تو کار دوخت و دوز به کار نرفته و اونها فرسوده نشدن من و تمام اعضای خونوادم از مرد در امانیم این کار حداقل هزار سال طول میکشه همینجا بمون و جانشین من باش هزار سال عمر کمی نیست شاهزاده جواب داد بله حق با شماست اما بعد گذشته هزار سال چی؟ باید تصمیم مرگ بشم؟ نه، من باید اون سرزمینی رو پیدا کنم که مرگ به اونجا راه نداشته باشه. ملکه همه تلاش خودش رو به کار برد تا شاهزاده رو منصرف کنه. اما شاهزاده تصمیمش رو گرفته بود و تلاش ملکه بی موند. ملکه گفت حالا که دوست نداری پیش ما بمونی، این میله طلایی رو به عنوان یادبود از من قبول کن. وقتی به کمک احتیاج داشتی، این میده به شکل هر چیزی که تو بخوای در میاد. شاهزاده به خاطر هدیه ملکه تشکر کرد و اون رو توی جیبش گذاشت و بعد هم دوباره راهی سفرش شد. شاهزاده هنوز از شهر چندان دور نشده بود که سر راه خودش به روتخونه عریزی رسید که هیچکس قادر به گذشتن از اون نبود. چون به انتهای دنیا رسیده بود و این رودخونه در واقع به دور این دنیا جریان داشت شاهزاده نمیدونست که باید چیکار کنه یه مسیری رو تو طول ساحل رودخونه رفت و اومد برای سر خودش رو نگاه کرد که توی آسمون شهری دید که تو فضا شناور بود شاهزاده ته دلش آرزو کرد که کاش میتونست خودش رو به اون شهر برسونه چه چجوری؟ چون نه پولی بود، نه ای که به اونجا دسترسی پیدا کنه. شاهزاده در تباتاب به این بود که هر طوری که شده خودش رو به اونجا برسونه. اون احساس میکرد که بالاخره به اون سرزمین مورد نظرش دست پیدا کرده. ناگهان به یاد میره طلایی افتاد که ملک بهش هدیه داده بود. در حالی که قلب شاهزاده از شدت حیجان به طبش افتاده بود، میله رو روی زمین انداخت و بعد هم آرزو کرد که میله به یه پل تبدیل بشه. تایی فکر میکرد که امکان نداره که این اتفاق بیفته. اما توی چشم به هم زدن میله تلایی تبدیل به یه نردبون طلایی پیش پای شاهزاده شد. نردبون تلایی میتونست شاهزاده رو به اون شهر آسمونی متصل کنه. شاهزاده در حال ورود به دروازه های تلایی بود که یه دفعه حیولای عجیب و غریب در مقابلش ظاهر شد. تا به حال همچین جونوری رو ندیده بود. شمشیرش رو از غلاف بیرون آورد و فریاد کشید. شمشیر چندتا از سرهای اون حیولا رو از بدنش جدا کرد. اما دوباره سرهای دیگه ای جای اونها رو می گرفتن. از شدت ترس رنگ به چهره نداشت. وقتی هم که از کشتن حیولا عاجز شد مجبور شد شمشیرش رو قلاف کنه، و فریاد کمک کمک سر بده. ملکه اون شهر با شنیدن صدای فریادهای کمک خواهی شاهزاده از پنجره اتاقش به بیرون سرک کشید تا از موضوع با خبر بشه. یکی از خدمتکاراش رو صدا داد و دش دستور داد که هر چه زودتر به کمک اون مرد غریبه برن. و بعد هم مرد جوان رو پیش ملکه بیارن شاهزاده بعد از نجات از دست حیولا به خدمت ملکه رسید و از اون تشکر کرد ملکه با همون نگاه اول به شاهزاده فهمید که اون نباید یه فرد عادی باشه به گرمی ازش استقبال کرد و علت اومدنش رو هم جویا شد شاهزاده هم در جواب به پرسش ملکه همه ماجرای زندگی خودش رو تعریف کرد و به اون گفت دنبال سرزمینی میگردم که اونجا مرگ وجود نداشته باشه. ملکه هم در جوابش گفت تو سرزمینی رو که به دنبالش بودی حالا پیدا کردی. منم ملکه مرگ و زندگیم. تو میتونی تو همین شهر و پیش آدمایی که حیات جاودانی دارن زندگی کنی. از مدت زمان ورود شاهزاده به این شهر هزار سال سپری شد اما این مدت انقدر برای شاهزاده زود گذر بود که احساس کرد که از مدت اقامتش توی این شهر شیش ماه بیشتر نگذشته توی این مدت هزار سال لحظه توی زندگی شاهزاده نبود که بهش خوش نگذشته باشه تا اینکه یه شب شاهزاده خواب پدر و مادرش رو دید بعد هم به یاد خونه و خونوادهش افتاد و آرزو کرد که کاش اونجا بود. صبح روز بعد شاهزاده موضوع خوابش رو با ملکه در میون گذاشت و به اون گفت که دلش برای پدر و مادرش تنگ شده و باید پیش اونها بره. ملکه با تعجب نگاهی به اون کرد و بعد هم فریاد زد مگه عقلت رو از دست دادی؟ هشت سال که پدر مادرت مردن؟ شاهزاده تو جواب ملکه گفت با این حال من باید به زادگاه هم برگردم. ملکه گفت باشه اینقدر عجله نکن. سب کن تا مقدمات سفرت رو آماده کنم. بعد هم از داخل دو دوتا ظرف خیلی زیبا و قشنگ بیرون آورد که یکی از اونها از جنس طلا و اون یکی از جنس نقره بود. ملکه رو به شاهزاده کرد و گفت گوشه این اتاق یه در مخفی هست. زیر اون در مخفی یه چشمه آب هست. ظرف نقره رو با آب اون چشمه پر کن. این آب ترسب شده. چند قطره از این آب رو روی هر کسی که بپاشی اگه هزار سال هم زندگی کرده باشه فوری می میره. بعد هم با اشاره دست به گوشه دیگه از اتاق که یه چاه وجود داشت اشاره کرد و گفت ظرف تلاییت رو هم با آب این چاه پر می کنی. این آبم از زیر صخره ابدیت خارج میشه کافیه که چند قطره از این آب چاه رو روی کسی بپاشه که حتی هزار سال از مرگش سپری شده اون وقت اون دوباره زنده میشه شاه ساده از هدایای ملکه تشکر کرد بعد هم خداحافظی کرد و راه سفر به زادگاهش رو در پیش گرفت شوسده اول وارد همون شهری شد که ملکه اونجا لباس بلند و نقره رنگ می پوشید. چهره شهر کاملا تغییر کرده بود. اون دیگه خیابونای اونجا رو نمی شناخت. به هر زحمتی که بود راه قصر ملکه رو پیدا کرد و وارد قصر شد. همه جا سوت و کور بود. توی قصر پرنده هم پر نمی زد. و تا بالاخره وارد اتاق ملکه شد. اون در حالی که هنوز نخست سوزن گلدوزی دستش بود، بی حرکت روی تخت خودش دراز کشیده بود. شاهزاده گوشه از لباس اون رو کشید اما ملکه بیدار نشد. بعد هم سراسیمه به اتاقی رفت که سوزن ها اونجا نگهداری می شدن. اما کف اتاق هم از سوزن خبری نبود. آخرین سوزنی هم که تو دست ملکه بود، موقع انجام دادن کار شکسته بود. و همین موضوع باعث شده بود که ترسم هم شکسته بشه و ملکه بمیره. شاهزاده بلافاصله چند قطره از اون آب ظرف طلایی رو, رو روی سر و صورت ملکه پاشید. ای بعد ملکه تکون خورد و دوباره زنده شد. چشماش رو باز کرد. ملکه بعد از بیدار شدن به شاهزاده گفت: دوست عزیزم، خیلی خوشحالم که منو بیدار کردی. حتما خیلی وقته که خواب بودم شاهزادهم جواب داد اگه من تو رو بیدار نکرده بودم دیگه هرگز بیدار نمی شدی ملکه با شنیدن این جواب به یاد سوزنهاش افتاد و فهمید که مرده بوده و زنده شدن دوبارش رو مدیون شاهزاده است از صمیم قلب از شاهزاده تشکر کرد و قسم خورد که روزی این محبتش رو جبران بکنه شاهزاده از ملک حافظی کرد و به سمت سرزمین پادشاه سرتاس حرکت کرد. وقتی شاهزاده به نزدیکی های سرزمین اون رسید متوجه شد که تمام کوه کنده شده و پادشاه در حالی که بیل و زنبیلش کناری بود بیجان و بی نقش زمین شده. دوباره شاهزاده چند قطره از اون آب زرف تلایی رو, رو روی سر و صورت پادشاه پاشید. پادشاه خمیازه ای کشید و از روی زمین بلند شد و فریاد زنان گفت دوست عزیزم از دیدنت خیلی خوشحالم. حتما خیلی وقت بود که من خوابیده بودم. شاهزاده جواب داد اگه من تو رو بیدار نکرده بودم دیگه هرگز بیدار نمی شدی. همون موقع پادشاه به یاد کوه و تلسمش افتاد و قسم خورد که روزی این محبت شاهزاده رو تلافی کنه. و دوباره به راه افتاد. توی مسیر پای همون درخت تنومند بلندی رسید که از ریشه در اومده بود و پیکر بی پادشاه اقاب هم روی زمین افتاده بود. با ریخته شدن چند قطره آب روی بالهای گسترده اقاب پرهاش تکون خوردن و دوباره جون گرفتن. اقاب سرش رو بالا گرفت و گفت مثل اینکه خیلی وقت بود که خواب بودم. دوست عزیزم، نمیدونم دونم باشه زبونی باید از این محبت تو تشکر کنم. خیلی خوب شد که بیدارم کردی. شاهزاده دوباره جواب داد. اگه بیدارت نمیکردم تا ابد هم نمیتونستی بیدارشی. و همون موقع پادشاه اقابها یاد اون درخت افتاد و فهمید که مرده بوده و به شاهزاده قول داد که روز این محبتش رو جبران کنه. شاه شاهزاده به قلم پادشاهی پدرش رسید اما وقتی مقابل قصر پدرش رسید به جای اون ستون‌های مرمرین قصر و تالارهای بزرگ اون که زمانی داخل همین قصر بازی می کرد، یه دریاچه گوگرد دید که شوله های آتیش از سطح اون به سمت آسمون زبانه می شاه شاهزاده به خودش گفت اگه پدر و مادرم تو این دریاچه باشن چجوری میتونم دوباره اونها رو زنده کنم؟ به خاطر همین با حالت غمگین از اونجا برگشت و قدم زنان و بی هدف یکی از خیابونهای پای تخت رو در پیش گرفت. همون موقع صدایی از پشت سر شنید. صبر کنید شاه ساده بلاخره شما رو پیدا کردم. از هزار سال قبل دنبالت میگشتم. شاهزاده در کنار خودش برد ریش سفیدی رو دید که پیک مرگ بود شاهزاده بلا فاصله حلقه انگشتری رو از انگشتش در آورد و توی چشم به هم زدن پادشاه اقابها ملکه سفید پوش و پادشاه سرتاس به کمکش اومدن. اونها پیک مرگ رو گرفتند و شاهزاده فرصت کرد تا خودش رو به سرزمین حیات جاودانی برسونه اما اونها از قدرت پرواز پیک مرگ بیخبر بودن و شاهزاده تو فاصله یک قدمی ورود به سرزمین حیات جاودانی بود که پیک مرگ از پشت سر خودش رو به اون رسوند و گفت بیس حالا دیگه تو متعلق به منی برکه سرزمین حیات جاودانی که از پنجره اتاقش در حال تماشای این صحنه بود سر پیک مرگ فریاد کشید تو دیگه تو قلم رو من صاحب هیچ قدرتی نیستی و باید برای پیدا کردن تعمه های خودت به جای دیگه ای بری پیک مرگ جواب داد حق با شماست اما یه پای اون هنوز تو قلم رو خاک منه بنابراین اون متعلق به منه ملکه جواب داد نیمی از شاهزاده متعلق به منه در اون صورت نیم دیگه شاهزاده به چه درد تو میخوره؟ یه انسان نصفه به درد هیچ کدوم از ما نمیخوره به هر حال من به تو اجازه میدم که وارد سرزمین من بشی. بعد در مورد اینکه این مرد به کدوم یکی از متعلق داره یه شرط میذاریم. پیک مرگ از یه خط مرزی باریک وارد سرزمین حیات جافدانی شد. ملک روکت به پیک مرگ و گفت من این شخص رو به آسمون پرتاب میکنم. درست اون طرف ستاره های صبحگاهی اگه اون روی شهر من افتاد متعلق به منه و اگه بیرون از دیوارای شهر من افتاد در اون صورت مال تو میشه وسط شهر میدون وسیعی بود که ملکه تصمیم گرفت برنامه شرفندی خودش رو توی همون میدون برگزار کنه وقتی مقدمات کار آماده شد ملکه یه پای خودش رو زیر پای شاهزاده گذاشت و سپس او به هوا پرتاب کرد. شاهزاده بالاتر و بالاتر رفت. از کنار ستاره ها هم گذشت و از نظرها ناپدید شد. ملکه از ترس اینکه مبادا اون رو مستقیم به هوا پرتاب نکرده باشه و به خاطر همین شاهزاده بیرون از دروازه های شهر روی زمین فرود بیاد خیلی مضطرب بود. زمان سپری می شد و پیک مرگ و ملکه به آسمون خیره شده بودن. تا ببینند که عاقبت شاهزاده مال کدوم یکی از اون دوتا میشه. ناگهان هر دوی اونها لکه سیاهی رو تو آسمون دیدن که بزرگتر از یه زنبور بود. آیا اون داشت مستقیم به سمت پایین میومد؟ بله یا نه. اما کم کم با نزدیک شدن اون به زمین نسیم ملایه می وزید و سمت فرود اون رو به طرف دیوار شهر منحرف کرد دهسته ای بعد شاهزاده درست روی دیوار فرود اومد همون موقع ملکه جلو رفت و شاهزاده رو بین بازوهای خودش گرفت و به درون قصد پرتاب کرد به خدمتکاراش دستور داد که پیک مرگ رو از شهر بیرون کنند اونا با چنان زربه ای اون از شهر بیرون کردند که دیگه پیک مرگ جرأت پیدا نکرد که